الحمد لله رب العالمين آرامین و سیدنا رب در آلیه قیبین و طاهرین المعصومین و و اللهم در زیل مسئله رشره مرموم شيخ چند دافه بین داخل اقابه یعنی بین شخص و بین خاضی رو محصره پرمودن من محصر محصر نبیرم. نبیرم از این محصره چه محصره درد کردن حسولا مسئله سنی بیده شیعه و درستش حسولا اختلافاتی که در فروع ما داریم این نکته شو کران ارز کردن در فکر شیعه معظمش برمیگرده به محسوط شیخ این هم از کتب اهل سنت گرفتن اهل سنت لستای سیاسی و دولت و قضاوت و اینای بود مسائلی بود که قاضی ها مطرح میکردن اینه دادن به فقه ها این برور از اونجا گرفتن در تهیه سالهایی که شده بعد عبارت شیخ خوندیم سه صورت ایش رو نرو فرموندن صورت اول هر دو هم شخص هم قاضی اعتراف دارن هدیه است شخص میگه هدیه فاسده است رشوه است قاضی میگه نه این هدیه صحیحه بوده این صورت اول شیخ در اینجا با دو تا احتمال هست عبارت هم و این روز غیر از اون عبارتی که از شیخ گفتیم یه مقدار از مرموم آقای ایرهوانی در حاشهشون گفتن که تقریبا بلکه تحقیقا تمام مطالب با یه کمتر اینا کمتر از ایشان به اینها در کتاب نسبال فواهی استاد آمدن مطلب یکی آیخوی هم کمتر آوردن من یه مقداری همیشه شون معتقد به متون هستن مقداری عبارت ایشان کنده به توضیحی هم از می‌کنم. البته یکی هایشی ایشان راجع بینید که اگر اختلاف ایشون آیخوی هم نویشتن خوندین اونا گفتن که اختلاف اثر نداره چون هدیه چه فاسد و چه فاسد زمان نمیاره پس اگر اختلافی هست در وقتی که این سرجاش باقیه و اون توضیح هم ارز کردیم بیشتر هست که هدیه لازمه نباشه اگر لازم باشه بازم حل نمیشه این راجع بگیم. این توضیح چون گذشت مرحومی میشه فهمه احتمل تقدیمول اول احتمال داره که اولی مقدم بشه این که تی که داده لعنه دافع اعرف به نیته مرحوم شقیه علت رو آوردن شون دافع اعرف به از کدیم هم در کتاب استاد هم در کتاب مرحوم هایی روانی یه بحثی راجع به این مطلب کردن هم تا بحثشون از کدیم نابسه اون کاملش رو به اون صورتی بود که من درس از ما دو بحث داریم یکی در قضاوت یکی که مطلقه خلاصش اینه کلو مالا یو کل، الا من قبل قائله و قولهو فی، حالا بخاطر تو باب قضاوت باشه یا تو غیر باب قضاوت ما نحنو باب قضاوتیم چون قاضی با اون طرف اختلاف داره، اما این مسئله تو غیر قضاوت هم میاد کسی که خانون ادعا بکن در حال طوره یا در حال حیزه این باب قضاوت نیست اختلاف نیست معضاله میگن قولش حجه است این رو من دیروز توضیح دادم و گفتیم که هم مرحوم استاد هم مرحوم ایروانی اشکال کردن خودشه هم اشکال داره این قاعده در باب قضاوت هم دارن این قاعده به نحو کلی تو قضاوت هم ثابت نشده به غیر قضاوت شاید شما سوال بکنید من توضیحش رو کردم اینجا بشون ندارم توضیحش رو کردم شاید بپرسین چه پرقی بین باب قضاوت و غیر قضاوت؟ من چرا اینا هستم اگر مطلبی در باب قضاوت آمد تعمی بشه میتونید اینو یادتون باشه دکتر کلی اگر مطلبی مثلا در مقوله عمر نه هنزله میگه دو تا قاضی هستن امام میخوان یوخر افقه ما هم ما فلحدیث بین دو قاضی ترجیح به صفات دادن بعضی از گفتن ببین دو مشته ترجیح به صفات این بحثش در همون ذیل مقبوله آمده. اگه در باب قضاوت مطلبی بود تامین نمیشه داد چرا چون باب قضاوت باب خصومت بین طرفینه ما گاهی ممکن است به خاطر وقت خصومت یک مقدار خصوصیات کم بکنی یعنی در باب قضاوت چاره‌ای ای نداریم. باید یه جایی هندش بکنی با خصومت باشه اما اینکه خانم بگه من در تهران هیچ چاره‌ای داره خب نظیرش نشه مشکل دعوایی که اون مشکل نداره یه در صحبم یا در حیزم شکل کنه میتونه اما در باب غذاوت نمیشه چون این به تو باهم اون خلاف دارد این لذا خوب در ذهنتون این به سوال قاعده کلی شده اگر مثلی در باب غذاوت آمد به جاییه تعمیمش نمیشه دارد لذا کل این قاعده اگاری تو باب غذاوت آمده تو مسلم آمده تو هر دو جا آمده و مثالی که موردی که ما داریم قضاقت مثالایی که مرحومی روانی زده در باب مطلقه جابجا شده این طریق دقیق مستده. پس این مطلب رو اجمالا مرحوم شیخ افتداعا از کسی نقل کردن که اول یعنی دافع عرف به نیته پس مقدمه بعدم اشکار شده که این به نهب قاعده کلی ثابت نیست کل ما لا الا من قبل صاحبه و ثبول روح جسمی مضاف به این که ممکن است شواهد خارجی هم باشه که این مطلب فقط به نیت در نگرده من بر توضیح میدم توضیح خاص خودمون را عرض دوم نکته اول ایشان این بود که کسی که دافه بعدم لعصالت فریت بعد خب معلومه تمسک کردن به عموم ادله و بحث کردیم که او اعلیت ثابت نیست حالا بر با اول آن بر مشهور لرود یرود دوهو این اشکال عرض کرده ما رو می روانی هم داره نخی اشکال اینه که بیگه جای عملیت نیست اینجا چرا؟ چون هر دو طرف میگن هبه یکی میگه هبه سعی بیگه هبه خاصه هر دو طرف میگن هبه هبه هم است که زمانش نداره و مالای ازمنده سهی لای ازمنده پاسده پس دیگه جای قاعدی عموم اعداد ید نیست و یه رو دوه امه ها مختزن لیست مختزن لیست مختزا نیمشه مختزن لیست زمان فی موضوع سبوت ال ید علاو مال الگیر و داره که فی المقام اول کلام فلعل المال مالهو کما یددیه القابض الا ان یغم اله هادا استصحاب و عدم سبب ناغل اعنی الهبت صحیحه اون وقت این بحث من اصلاح خلال بحث ها چند تا بحث دیگه هم اضافه می یه بحثی دارن که در میان سابقی به این قشنگی نبود خلق توی اینا تو زیاد بود توی کلمات مثل مرموم نایمین سرکرده مرکبش رو کنیم اسم اون بحث موضوعات مرکبه است یه بحثی خودشون در اصول گاهی اوقات موضوع مرکبه میشه مثلا یه مشتهیدی که شیعه باشه پس این با باشه، باشه، مثلا عادل باشه چیین باشه شما باشه آبی که کر باشه و مطلق باشه میشه با بزو گره یا آب مطلق کر مباه باشه میشه باشه بزو این موضوع ما مارد کرده. اون چی که در اصول متعرض شدن بی مناسبتی که من این سر کرده اقسام بکنه و اون رو تنقیه بکنه موضوع آتمارد کرده نقصه اینه گاهی میشه یک قید موضوع رو ما به وجدان میفهمیم یک قیدشو به تعبد میاریم مثلا این آب متعقبدانه به یعنی آب مطلق کر بودنش وجدانی نیست سابقا کور بود حالا استصحاب کرد این زوابت چطور میشه یک موضوع مرکب نصش رو به وجدان ثابت کرد نصفش رو به تعبد اگه میگه اشکال نداره بعد واردون بحث چون بحث اصولیه، فقط مغاصب ذهنیت بیاد. نه اینجالا واردون بحث بشیم ما میتونیم در مثلا میگه با آب مطلق کر وضو بگیر. آب مطلق بودنش وجدانیش، کر بودنش است. هر دو تعبدی، هر دو وجدانی میشه. این ساغرا مطلق بود، یک کمی تو شک نمیکفید. شک میتونیم از اطاق خارج شده، استصحاب اطلاع میکنه. کرم بود باش درستون نشستی. شکل میکنیم از این اتو... کوریت خواهی هر دو رو استثاب میکنیم استثاب اطلاق استثاب کریا. پس این موضوع ما ما هر دو جزش میشه تابادی هر دوش میشه تابادی هر دوش میشه وجدانی و یکی زوابه داره من نیمخواب وارد نقصه بحثش بشم این مقدارشون روشنه ایشون یه ازم یو زم الهالا استثاب سبب ناغل یعنی این طبیه بگیم این آقا یک داره یعنی ماله بوده قاضی مال این آقا بوده گرفته اگر حده صحیحه باشه زامن، نیست اگر میگه رشوت مثلا یا حده فاصله و رشوه بوده برونه رشوت زامه شکت میکنیم یعنی اینجوری بگیم. بگیم اولا این که بجدانیست که ایشان مال دیگری گرفته این که بجدانیست این پول که مال دیگری بالا اون طرفه قاضی پول طرف میگه ماشین طرف گرفته این وجوه نیست این من کلام خود قاضی یه هدیه به من داده به سبب صحی یعنی از و زمان احتضای زمان میکنه اون وقت خود قاضی میگه به سبب صحیح به من منتقل شده پس من ضامن نیستم این میگه سبب صحیح منتقل نشده پس زامن این اینطور میگه و این لعنت یه الله ها داره استسحابه ادم اسباب ناقل آنی الهبت صحیحه بیم از این راه بارد بشیم که خب شما ممکن است بیین از ما هم اثرات ادم الهبت الفاسد هم داریم میگه ولای و بله اسالتو باله اسالتو حاوا ادم الهبت الفاسده ل ادم اثر له چون اون استسحابه ادم رو شفته تاثیر نمیکنه. چیزی می باش باشه اثبات بشه و این نمل اثر لعدم سبب ناغل و وجودیه چون سبب ناقل تأثیر میکنه در برداشتان زمان چون اصالات زمان اختضام میکنه با عموم علیت زمان این باید یک سبب می که زمان رو برداره و این نمل اثر رو لعدم سبب ناقل و وجودیه وجود سبب ناقل. بله کان بله. وناق سبب غیر ناقل اندام این توجیه استصحاب و توجیه این مطلب این خلاصه کلام شد بله که ملاک یکسعه ایشون را تشخیص میکنه ان اسالت عدم سبب ناقل یعنی علبت صحیحه بله محکوم به اصل آخر یعنی اسالت صحه این همون بحث است که مرحوم شیخ هم مخلح کرد اصلا قبل شیخ هم بوده اما به این وضوح انصافا در کلمات سابقی نبوده بعد شیخ هم شراح کلام شیخ من اون ناینی و من اون دیگران این هم شراح کلام شیخ یعنی کسایی که این مطلب رو شهر کرده کلام شیخ یا انصافا تحقیقات لطیفی دارن خیلی تحقیقاتشون لطیف و بشنگه و اون این بوده که گاهی می شده در یک مورد دو تا اصل جاری می‌شدند که اینا معارضونه. این شیخ ان محمد این پیشنهاد رو مطرح کرد که گاهی اوقات یکی از این اصل‌ها جاری میشه که دیگه جاری نمیشه. مثلا یکی از مواردو مو حکومت گره. همون مثال معروف اگر آبی بوده شک دارید یقین یعنی داشتین شک در زوال کرو یا نش حساب از اون بر لباسی بوده نجس بوده با این آب شستیم اگر با آب کر شستیم پاک شده اگر کر نبوده باقیه به نجاسته خب اینجا صحبت این که چرا استصحاب بقای نجاست نمی کنه. لطیف این نکته خیلی لطیفی نکته یعنی انصافا از زمان شیخ به بعد چون واقعا در مباحث، این مباحث روح قانونی از داره خیلی لطیف این مباحث انا همیشه استدلالی فقط با ما نداره و انصافا خودم های اصولی چه سنی چه شیعه توی مسائل خیلی درگیر نیستن متأخرین سنی ها دقیق نیستن متأخرین شیعه به خصوص بعد از شیخ بعد شیخ هم هست اما انصافا جموندوریشو تنزیمهاییش توسط شیخ و بعدش شرح راهی مرکز مثل مرحوم آزیا و مرحوم آ... مرحوم آ... نایینی بیشترین شارح آثار شیخ نایینی است اما حرف آزیا هم خیلی دقیق خیلی لطیف است دقت بکنید تو من براتون روشن بکنم صحبتی کنم مطرح اینه که شما یه استثاب کریت استثاب کریه روی آب کنه لباس نگسته و آب کر شدیم پاک درست شد از اون از شون به کریت نداری که از اون از شون به نجاست لباس داشتیم تصور این روح قانونو بیار میگه یقین به نجاسته لباس داشتیم این لباس رو شستیم این لباس رو با این نجس شستید این لباس رو با این شما شفت میکنید استثار بقای نجاست دور دور دور. استثار بقای نجاست چرا شما حساب کوریت نکته دلیلتون یکیه خب دخل بکنید لاتر واضح یقینه بشن آیا هم حقشون اینه انتباه مطلق یا آم بر افراد به نهر واحده مطلق یا آن نسبت در افراد متساوی اقدام به صلاح خوبی اگر گفت اکمل علماء این اکمل علماء اگر زیدشان روشن عمرشان روشن حسن حسن به ده واحد این یه نقطه روشن شد ما یک دل که بیشتر نذاریم لاتنگوز یقینه بشه از اون وقت با این لاتنگوز یقینه بشه میگیم تو کریت میاد بقای کریت خب تو توی کوریت آمد بقایه کوریت تو نجاست لباس هم بیاد بقایه نیزه صبح از اون هم شما میگین در اصول لوازمش با هم تا آرز فیدات مشکل نداره. این نکته کنیش اینجا اینه این نرافت کار اینه دلیل یکیه نسبتش به هر دو به لسان واحده لیکن شیخ مخواهد اینه بگیر این دلیل واحده یکی رو میگیر یکی رو میگیره این مثل چک مجلس تا حالا شما ببینید ها که مقدمه اون تحلیل اصولیش شون دقت نکردین. اون نکته اینه دو تا دلیل نیست. اگر دو تا دلیل بود، یه دلیلی که دلیل با استصحاب و قرینه تریف اصل لباسش اون سیفاطی مشکل داشت که. دلیل یکیه. نکته قانونی شون اشتباه شده. دلیلتون یکیه. اون دلیلتون داشت هم قضیه به شک مفهوزن اینه که این دلیل واحد نسبت به مواردش صدقش علا حد سواهش این همچنان که آب رو میگیره میگه کره صبح رو هم میگه لباس هم میگه می نجیس چه مشکل داره؟ چرا شما به عکس نمی کنیم؟ استصحاب استصاب بکنیم ببار نجاسات لباس پس آب کردی یا بگیم هر دو جاری میشه؟ هم بگیم آبکار رو از هم بگیم لباس نجس است از به خاطر استثار چون یقین که ناواده شیخ میخواد بگه نه تابود فقط به کر میخوره به لباس میخوره این نقطه روشه شد کجای کار بره میتونیم ما اینجور تصور بکنیم یک دلیل واحد این براتون کاملا جا هستم این دلیل واحد چطور میشه دو مورد رو این دو مورد طولیت دارن یعنی اگر آب کر بود پس لباس پاکی اما این مشکل نداره که دلیل واحد هم کر رو شامل بشه هم لباس رو شامل بشه حالا من دیگه باید بحثه میشم باید بخاطر اشاره بکنم باید بحثه میشم بخاطر بسیار لطیبیه که چطور دلیل واحد این دیگه از زمان شیخ به بعد جا افتاده در مسئله ما که اگر بوده احسی یکیشون نسبت به دیگری توری باشن سببیت هم مسببیت باشه بینشون همون دلیل واحد سبب رو میگیره دیگه مسبب نمیگیره پس سه تا فرض در این هست بلکه چهار تا فرض یکی این که بگیم چون این دو تا با هم نمیستدن هر دو اصل جاری نشن یکی این که بگیم هر دو اصل جاری باشن یکی میگم استصحاب در لباس جاری بشه در آب جاری نشه این سه رو آنو ند کردن میگن استصحاب تو آب جاری میشه تو لباس جاری نمیشه تصفر کردیم؟ استصحاب توی آب جاری میشه این آب سازقاً کر بود حالا اون اگر حالا استفاده کردین کره پس لباس هم پاک شد دیگه جای استصحاب بقای نجاست لباس نیست یه شما نبید این لباس تابقه چون شما این لباس رو با آب کره تعبودی شستید پس این بحث اصل, م... اصل به اصطلاح حاکم و محکوم اصل سببی و مسببی اون نقطه اساسی. گای اصل سببی و مسببی در اصطلاح های دو تا اصلا اون مشکل نداره مثال همون مثال بارش. شما استحصاب عدم تذکیه می کنید استحصاب مکنه عدم تذکیه اصلاح همون این بازار گوشی خریدی طبق استصحاب عدم تسکیه حقم که این گوشت حرام است و نجیس است و مثلا تسکیه نشود اما از اون ور اصلات سوق مسلم قاعده یت مسلم و سوق مسلم میگه نه این تسکیه شده اپاس این دو تا اصلا اینجا مشکل نداره این دو تا اصله اگر دو تا اصل باشن مشکل نداره دقت فرمودید یک اصل استصحاب یک اصل سوق مسلم قاعده سوق مسلم بر او مقدمه اما گاهی اوقات نه هر دوشون یکی هم. این راجبه اصل سببی و مسببی در ما نحنفی. در ما نحنفی. مثالی رو که مرمومه آیگی روانی زدن از قبیل دومه یعنی به اصطلاح سببیت و مسببیت به لحاظه یک اصل حاکمه وقت این اصل حاکم در اونجا چجور میشه این هم یکی از معرکت الارا و اصولی ها شده که شیخ یک تعبیر داره بعدش شیخ تفاثیر یعنی آراء مختلفی مطرح شده ایشون می که وَلَا كَبِيَدْ فَأَهُ اَنَّ اَصَالَتَ عَدَمِ سَبَبِ نَاقِل محکومون به اصالت به اصل آخر اعنی اصالت سهت فلهده فَإِنَّ اصالت سهت فلهد ناقِل مقدمون على کل اصل موضوعی امکان بیمورده ها لوجود اصول موضوعیت قاضیت بالفساد مورد ها قالبه یک اشاره داریشون من این اشاره شو به نحوه اشاره متعرض بشن تفسیر شوی اصول ببینید یک قاعده دارن آقایون که اگر دو تا عصد بودن که نتیجیشون متعارض بود یک راهی داریم به اسم آلا حکومت به تعبیر آیان، ما تعبیر دیگری داریم که این شوی تفسیر جدیگه یک اصل رو بر دیگری م همی مثالی که یه کنیزه مثال واضحترش همون استصابید که من مثال دارم استصاب عدم تسکیه با قاعده سور مسلم. مثال واضحترش قاعده تجاوز با استصحاب عدم اتیان حالا مثال واحد تجاوز برسوم بزن یه همشه یه که کن اگر کسی در سجن شکل در رکو کرد به قاعده تجاوز نیزه حکم میکنه به اتیان رکو میگن این قاعده تجاوز معارض از اساس عدم اتیان رک چون ناگهان میگه من در حال قیام بودم در قرائت بودم هم حال سجودم نیم در رکوع را انجام داده گیرنده خب اکثر آدم یه بحثی که اینو مرحوم شیخ مطرحی کرده البته ایشون به یک تعبیر تعبیر دیگه هم دارن و اون تعبیر نکته ای تعبیرش اینه ما بین این دو تا اصول چیکار بکنیم استصحاب میگه تو رکوع رو انجام ندیدی قاعده تجاوز میگه تو رکوع را رو انجام بده کدومو مقدم بکنیم از سرم اینجا تفاصیل رو مختلف دارن مثل مرموم استاد مثل ظاهر عباسیشون ادهی قائل به حکومت هن حالا تحلیلاتش و تحبیراتش فرمون و اون نقطهش اینه نقطه حکومتش میگن اگر دیدین شاره در یک موردی که یک اصلی خودشی نفسه جاریه معضال یک اصل دیگری قرار دار این مرمش حکومتی نقطه لحبیه. آه بقاطه لرمیه یعنی اگر قاعده تجاوز نو باشه ما قاعده استثاب میکنیم. میکنیم اگر قاعده سوق مسلم نباشه باشه استثاب میکنیم اگر سوق مسلم نباشه شک بکنیم در این تسکیه شده نه از ادم تسکیه پس چرا شاره میاد در مورد ادم تسکیه سوق مسلم قرار میده کبیده فکر استعدادشی موسیقی شد حالا از این بحث احتیاج به یک تفصیل بیشتری داره جاش اینجا نیست شاید بعضی عبارات ورود هم هست بعضی از عبارات تخ... به اصطلاح حکومتی که معلومه استاد و شیخ در اینجا و ایشون آیه روانی هم داره شیخ هم ظاهرش حکومت یک رأی دیگه هم هست تخصیصه یعنی که انما گفته هر جایی که شکل در حالت صادقه باشه عدمش هست الا در این مورد تخصیص کنید. این هم یک تفسیری دیگری ما همیشه شبیه تخصص می‌نداز از ورودم بالاتر این مجموعه چهار تا مطلب در اینجا تفسیر مفسر جاش الان نیست الا یعنی خیلی خارج میشونه بس خیلی مقدمات داره ایشون در یک وقت دیگه ایشون از این راه ایشون میگن که لاننا اسالت الصحه آلی من یه توضیح دیگه بدم اسالت الصحه دو تا داریم حالا ایشون یکیشه اشاره به یکیشه مراد ایشون یکیشه ما اصولاً اصطلاحاً اسالت الصحه یعنی حکم به صحت عمل دو تا داریم اینا من میگم برای اینکه خوب دقت جا واسه بحثش میشه آیان هم متاسفانه توی قصول چون اینها رو قواعد فهم می دونستن متعرضش نشدن یا که مرحوم شیخ انصاری به مناسبتی در آخر در اشتغال قاعده لازره رو آورده اونجا متعرض شدن به مناسبتی تو آخر استثاب قاعده ید و تجاوز و فراغ و اینها رو اونجا آورده و تا آرز اونها با استثاب اولا اونجا متعرض شد ما هرچند که شروع بود که خوب بود یه جایی هم تو اصول برای قواعد فقهی مهم قرار می‌دند یک جایی یه نرو بکودن یک چیزی اونجا قرار بده یک چیزی اونجا قرار بده این جوایق قواعد مهم و اصولی رو می آوردن در حال این قواعد فقهی هستند اساس صحت جزء قواعد فقه جزء مسائل اصولی تو اصول نه بود شیخ به این مناسبت که اساس صحت معارض با اصول کمی مقدمه درست می این مناسقه تو اصول ورده ولی اساسا تو اصول نیه و اساس اصالتا دو تا داریم در مورد فعل یکی اساس سه حتی فی نفسه که اصطلاحا بهش قاعده فراغ و تجاوز می ده قاعده فراغ رو اصطلاحا اگر شک در وجود در اصناع عمل اصطلاحشون اینه یکی شک در وجود باشه یکی در اصناع عمل یکی در نماز شک بکنه رو انجام داده یا؟ این اصطلاحا سنشان قاعده تجاوز قاعده فرا شک در سهت بعد از عمل نه در اصل وجود از این حاکده قالو ما بودنی تامل دیم فیلن اونه که مشهور بازون درم بکنم توضیحاتش جای خود میشه شک در سهت بعد از عمل پس قاعده تجاوز شک در وجود اصناع عمل قاعده فرا شک در سه حد بردارم لکن جامعه هر دو قاعده از سال اتا سه حد نفس یعنی که یعنی طبقی این دو تا قاعده حکم میتونیم اون عمل انجام شده شک در در رو خود انجام شده شک ببینیم بعد از نماز نمازتون صحیح بود یا نه بعد از وضوع وضوعتون صحیح بود یا نه اون وضوع صحیح هست اون نماز صحیح هست این بشه یعنی اصالت و سهتی فی فعل نفس پس مفاد اصالت و سهتی فی فعل نفس یعنی چی؟ یعنی امتصال انجام شده یعنی معتی به مطابق است با معمولون به به عبارت مختار امتصال وقتی معتی به متابق شد با معمولون به که یا به اصطلاح برزی دیگه تطابق اراده عاملی با اراده فاعلی یعنی فاعل اراده خودش رو عین اراده عامل عامر انج... انجام بده تطابق اراده فاعلیه معن اراده عاملیه مثلا خداوند ما ورغید نماز بخون با ده کس یا نمازتون با ده کس تطابق اراده تین ارزش به صحت میکنه ازش شریع به امتصال مودا روشن شد یعنی شما با قاعده تراوته جواب میگین عملتون صحیح انتصار انجام شد این اساس صحی فی فعل الغیب نیست یک اساس صحی فی فعل الغیر هم داریم این هم چیزیه رو آی که برام آیه روانی میگه حالتیام که اساس صحی داره اینه که نه اون یکی اعثارته صحت فی فعل غیر بنا خود دلیل شرعی این دلیل نداره ها <تص> دلیل لفظی شرعی نداره اون روایاتی که اینجه زعف علاقی که علا احسنه خوب دقیق میکنی، اونا مفادش صحت نیست مفادش اینه که این گناه نکرده مفادش تقابق معتی با معمورون به نیست دقیق کرده خوب این نقطه لفظیر که دقیق بکنید اصالات صحی پیفعل نفس مفادش صحت عمله برای زاویه ثابت دو بیشتر و غیر ثابت دو خو؟ درسته که چی هم؟ خود می‌خوی؟ از آن شهر این دکل مسجد؟ ای؟ نه نه نه مالداری، مالی، مساجد، اون دغدغه خوششینی، لکه هر از اون یک مشکل اون رویت همونه. اون سوم مشکل داره؟ سه تا مثال در اوقات مساله است هیچو چنین بحثا لح... عبار بر نمیگرده همش به وصول موضوعی دیگری یکی از مشکلات بزرگ اون روایت همینه است مشکل به صدر ظاهره لاین حل اون روایت چون اگر روایت معناش این باشه کل دو این لگاه حلال حسب علم و حرامون بینه یعنی امام اساتل اباحه قرار دادن در شواز موضوعی البته این در شواز بکنی نیست اونم ادله که مثل صبح علیک و الله شرع رفت من بعد قاضی ید به صحت بر میونه اول عاد يكون عندك ولا انه حر فبا نفسو این برمیگرد به اقرار آمده گفت من عبدم به اقرار دع اساس اباحه برمیاره حالا این یک مشکل بزرگ رواس مساله اینه که سه تا مثال آمده هیچ مثالش با عقاب رواه نمیشه تشخیص تام جواب اعلام دادن این قدیمیو ها جدیدیو نزن مثلا وازیاد دیگه را خود ما هم متعرض شدیم مثلا بعضی جار رواه این چند این رو گفتیم یه جای کجاشه به هر حال ما در روایات اصالت روشن شد دقدر من چی مدعای من چیه در روایات اصالت و صحی فی فعل به معنای صحت عمل یعنی تطابق معتی به با معمور به خوب دقدر اما صحت عمل به این معنای که ایشان گناه نکرده گناه نکرده غیر صحت عمله بوسی مثلا در ما ماحنافی قاضی میگه هبه صحیحه دافع میگه نه هبه فاسده است ما با اون روایت ضعف الی اشی که الا اکثر ثابت میکنیم قاضی گناه نکرده این گو... گناه نکرده غیر از این نمیگیم هبه صحیحه قاضی وا سرو در لازمش رو در اصول لوازم حجه است پس خوب دقت بکنی اصالت و صحی فی فعل نفس رو نه اصالت و صحی فی فعل نفس اصالت و صحی فی فعل نفس این معناش اینه که بلا را از امام بلا قدرکت را یعنی عمل و صحی دیگه اما در روایات خوب دقیق ولذا اصالت و صحی فی فعل نفس رو باید از سیری و اغلایی اثبات بکنی حتمی بعد توی روایات صحت عمل غیر نداری روشن شد اونی که از روایات در میاد این شخص عمل حرام انجام نداده مرشکه به گناه نشده اما این که این عملی که انجام داده نمازی که انجام داده واجبه کمی شرع الاسلام این در این ایرادی در احراز این روایت نداره روایات در فعل نفس میگه نمازه تو تامده بله انسان به از این سیره سیری اغلاه هست تو جامعه ما این کار میکنیم این ربط واضح نمیه این رو معاملات هم دقت دقیقه این خرید خونه،, خونه خرید ماشین خرید آیا درست خرید درست نه خرید باشن شد پس این رو باید یک سیره و اغلاهی از شاره بگیدیم اما اونی که الان تو ادله روایات داری تو اثارت و صحیفی فعل نفس سه حت العمله تو اثارت و صحیفی فعل گناه نکرده کار حرام انجام نداده یعنی اینجا اگه شک بکنیم آزی میگه من هده صحیح بوده اون میگه هده فاسد با اثارت و صحیفی فعل خیل میگه گناه آزی گناه نکرده اما هده سهی بوده این رفت هدهی صریحه بوده یعنی تعبودی ما در رواید این عنوان نداریم زعف الهرهی که علا این مفادش بیشتر نیست که این گناه نکرده توجیب بکن بلفردن اشتباهی کرده وزیفش می دونسته قراراتم قلط خونده وزیفه می بیدیم مثلا قراراتش قلط نیه شاید بیشت این نه این که این درست عملش شاید بیشت این نیه بکن ما تنها راهی که داریم باید از سالات و سهی پیف معاملات بود مثلا این که آفر بودن به سیره اغلایی ممزاته به مقبل اشکاره درستش مخواهی اگر از سالات و سهه یک توضیح مخواستم ثابت شد اصلا برای استثابات مقدمه چون بگیم یک از با اغلایی شاره نهی نکرد این راه طبیعیش این یک اصل اغلایی بوده زندگی اغلا برای این است و شاره از این کار جلوگیری گیره نکرده مثل اینکه شاره فرمده اینجا هم, هم به نگه شاید بعضی از مردم خبر هم قبول بکنه اما شاره خبر خبرفاسه قبول نه محصوله اگر پسکش توی که ازی شرابخور مثلا شرابکور شرابکور هست اما راست روه اما طبق تعبود شرعی شما خبره شراب خور و رو خبره شرابکور ولو بود این آدم راست روی شارع میتونه تابت بکنه درست هم روشن شد مثلا؟ پس بنابراین خوب دقت بفرمایید مراد ایشان از اساس سه اگر اساس سه ثابت شد اون اگر اساس سه حسابه شد قطعا در استثاب عدم مقدمه مثلا نزال که به شما زدم آیده تجاوز که اساس سهی پی فعل نقصه بر استثاب عدم رو مقدم. مقدمه اگر شما شک کردیم در و ولیذا در لسان روایات عرض کردم ما دو لسان روایات داریم کلما شکرت من مامز من سراته که و تورک فعنزهی کماهو یک لسان اینه یک لسان میگه شک در رکو کرد امان فرمان بلا قدرکت اون فعنزهی کماهو به جریع عملی احتمال داره بخوره اما بلا قدرکت قطعا اصل تنظیری و محرسه یعنی امام بیشت شما نماز کامل انجام دارید رکون رو انجام دارید بلا قدرکت, با قدرکت. با قدرکت. یعنی رکوع رو انجام دادی اگر رکوع رو انجام دارید, رو دارید، نمازت کاملی پس بنابراین اگر نماز آدم کامل شد دیگه جای اصالت عدم رکونی نیست جای استثاب عدم رکونی است و وقت اصالت و صحیفی فیلش غیر اگر آمد همینطوره مثل اصالت و صحیفی و را هم تو این مسئله مرحوم شیخ قدس الله نست خود شیخ هم فرمودن اصالت و سهه مقدمه در نتیجه اصالت سه به نفع قاضیه چون قاضی گهه به یه صحیح بود و موگه پاسد اصالت سهه به نفعیشونه تعبیر مرحومه آیه ایروانی اینطوره لوجود لان اصالت سهه به سبب ناقل از کلیف اصالت به سبب ناقل این در روایات نیارد اینه اصارت صحیف البی فی اینه اصارت صحیف سر ناغل مقدمون علا کل اصل موضوعی مثل ما نحنفی مثل اصارت علم هبت صحیحه مقدمون علا کل اصل موضوعی کانفی موردها در مورد اساس صحیف لوجود اصول موضوعیت قاضیت بالفساد موردها قالمه این همون نکته معروفیه که اگر دو دلیل باشه ما ببینید یک دری در جاییه که قالبا اون اصل دیگه هست پس این حکم می‌کنه که این مقدمه ولو بیمورده موزه مورد سلولو سلولن تو قدام لوغام تو قدام اساس علیها بر اون اصول موضوعی لغت و لم یغدلها موردو مش با در موردو یعنی قللها چون کوسیم قاول میگه بله ان لا و الهبه قاطع قاطع اشکال این اساس سهه اینه اثبات میکنه که هبه مجانی و مالا تصوبر و مالا تصوبر احتمال میدم شاید مرحوم روانه البته رو من احتمال میدم ایشون مخاطب ما اساس سهه فقط در میاریم مساله گناه نکردن رو در نیاری سهت عهد رو چه نظر ایشان دیگیم باشه داستان از عدل از عدله همینطوره از عدله لبیه ما اساس و صحیفی غیر نداریم هم با ایشان هم. لا تسبت و کن الهب مجانیتن قاطعتن زمان و مالم تسبت کان عموم و عدیت به زمیمت اصارت عدم عنوان المخصص عنی مالک المالک مالی مالهی مجانه وجته على زمان این یک چیز دیگه ایشون در دیتی فارنده توضیح یه مطلب ایشون چه مطلب ایش از اصول کاربورد داریم ما درسه کاربورد داریم حالا ببین مناسبت اینجا ایشون فرمیدن. من فردا با توضیح ایشون ان شاء الله تعالی تمام شده همو تمام نشده چهار دقیقه مونده همون حسابش چهار دیگه مطلب تمام نشده فردا مطالب خلاصش الان بگم منزل کار من خلاصش الان بگم که فردا بتونیم مطالعه بکنیم یه بحث بسیار معروفیست که اگر در شبهات مصداقیه مخصص منفصل شک کردیم رجوع به عموم آم میکنیم و نمی کنیم اینشالله فردا هست